و آله قطعیم و قطعیم و معصومی و الله و دایمت و هنو و دایمت و هنو اما اونا مراجعی اوشالی مراجع از متعرضه بودیم که عدله عدم حجیت خبر اینشون اول در عدم حجیت تمسو که هم به اجماع که دیگه ما توبیقاتش انشاءالله دادیم بعد در وجه سروم چون مختصر وجه سروم رو میخونیم و در وجه دو ال آیه صفحه 177 از همین چاقه جدید مثل و صفحه از وجه سالت از ال آیات نائیت و عمال بغیره علم که قولی سالا و لا تفکم آلی سلکی بیه علم و آیه دیگه بعد جواب دادن وفیه اولا از مفاد ال آیات شریفه ارشادون الى حکم العقل به وجوب تحصیل الالم بالمؤمن من العقاد و عدم جواب احتفاق بزن به ایش مولوی نیست که مولوی خدا در درباره در باره عدم علم یا انرونه لایقون حد شیعه نیست و که ارشادیست به ملاک وجود در ذر محتمل امکان اخراویه فلا دلالت لقا علا عدم هجیه خبر اصلا بگاه داره که ناظر به خصوص خبر نیست همینطور که ایشون فرندن و که اطلاح داره شامل خبر همیشه اما این بیدید آیه ارشاد هست یک نظره یه حالا ظاهر نظرشون با آیه اولا باشه ولا تقمال ازرکه آیه دوم که قطعا ارشاده این شبه موردیه درشنی ای نظر این نظرن لایوهین حق شیعات شبه موردیه درشنیست الان که از مقام ما این مقدر رو توصیح دادیم آیا که از این قبیل و عدله شدیه این قبیل قطعا احکام ارشادیست و مطابق با فکرت انسانی اصولا نیازی هم این نیست که آیه مال مهمن اعقاب باشه آیه اطلاق در همه اتحار در همه شؤون زندگی و از کردیم بعید نیست در که جامعه اسلامی که در اصل یک جامعه جاهلی فوق الارده ها رفتاده بود مثلا در اون زمان حاول قیاس با اروم و ایران نبود مثلا مکه و مدینه و حرب کل دیگه بعد اینها رشد علمی پیدا کردند و به اون درجات را آزیه استیدند همین. آیات مبارکه است که به مسلمان های یاد میده دنبال غیره علم خودش منشه این که انسان در زندگی خودش چه در مسائل تاریخی، مسائل علمی، مسائل سرعتی، مسائل طبیعی، فیزیکی، شیمی، شرعیات، عقلی ها تابعیت دنبال امر واضح و روشن بره برای صورت این علم هم و این زن هم در اینجا به معنای این اصطلاح منطقی و فلسفی که تو زن مبارکیشونه نیست اینگلی که ایشون معنا فرموندن از که این مراد از علم در اینجا وضوع و اینکشافه مراد از زن ادراک ناقصه و بیشترین نظر در شریعت مقدسه در ربان آیات مبارکه برای ارشاد و این است که همیشه سعی کنین ادراکاتتون زیر بنا و پشتبانه علمی داشته باشه زن مراد اینه مثلا اینا وجدنا آبا اینا الاخازار اینا الاخازار این پدران ما سنت جامع این طور قرآن میتونه خبی ممکنه سنت غلط باشه پدران اشتباه کن پس مراده از زن این طور توضیحاتش گذرستی میخوام تکرار کنم وقت شما رو بگیرم اصلا مراده از زن در این روز که دارم لا یهونی من الحق حق یعنی مطن این ادراکات ولو این ادراکات جزمی باشه ناظره به جزم و بیره جزمی ولو این ادراکات یقینی باشه که همان بالان ادرافتشون صد درصد جزمی مهم در جزمی بودن و یقینی بودن به این معنا یعنی اعتقادش کامل صد درصده این مهم نیست اون مهم این است که اون زیر بناها و پشتبانه این بررسی بشه نظر لایمونی حالا شما به آثاری پدرانتون و اون سنت که در جامعه بوده صد در صد یقین یعنی دارین یقین یعنی ظاهریه یعنی. لیکن میگه فکر بکنی اولوکان آبا همون لا همون ممکنون هم شباه گردن بشه رو زد مراجعه بکنی برونان کار بکنی روشن بشن پس این آیات همون که یک امر فیتریست بحث محمد از اقاب نیست یک امر بشتیان نیست بحث خبر هم پیش دائره بسیار وسیعی داره در زندگی انسان در زندگی علمی در صورت علمی که انسان پیدا میکنه سعی بکنه نه سعی، حتما باید این کار بکنه که ادراکات خودش رو همیشه پالایش بکنه تصیح بکنه تنبیه بکنه با مراجعه به شواهد خارجی هر فرمی در شواهد خودش پیدا بکنه که آیا این درست این حق این واقعه یا نه چون از کردیم از مجموعه آیاتون باره که در میاد که اونجا حقی هست که اصطلاح هنگوزیان را عالی است این که خیال کنیم واقعی نیست حقی هست دو این که این انسان امکان وصول به اون حق رو داره این, این آنی ما هر بگه با و با ادراکات ناقص اونه کلمه رن هست کلمه نقصه چیزی که کم داره اون اصطلاح این در کتاب‌های کتاب درصدی هفتاد درصد نه بس و نیست نفس این اطراق به خاطر نفس یه میشه رضا در تو برهان کنیم کنیم کنیم اگر شما گید به محن اون برهان رو خودتون بیاره. ما از وقتی که منطق یونانی ترغیمه شد بیشتر رو دلیل کلمه حجت رو در د اما در واقع دو اصطلاح دیگه هم هر کیش سلطان یکی برهانه معارضه و سلطان و یک مغرب صحبت از هر تکراره بله آیره به خبر نداره اما بحثش اینه وقتی شما یک چیزی دلیل واضحی برای او نداشته باشی شارع میگه دنباله رو نری تصادفاً این انطباق به خبر خیلی واضحه مثلا شما بیاین ببینین آ این مطلب این طوره چرا این طوره چون یک سره خبره خب تازه میکنه ممکنه ممکن است اشتباهی محیط نبوده، زار نبوده، خصوصیات نبوده بعدم ببینیم مثلا شواهد تاییدش می‌کنه اشتباه کرده باشه انسان که ببینید این میشه ان من لا یمون الحق شیء پس آیه مبارکه مربوط به نیست لا که شامل خبر هم میشه بلکه خیلی داره واسه داره تمام جهات زندگی انسانی رو شامل میشه طبیعتاً هم این آیات مولویت نداره حتی ما لا تقوییم لا تقوییم سیگه نهدیش را که مولوی ما از که دیگه در مخوری مثلا قابل جهر نیست اگه قابل اینکه مشکل لحظی داره اشتباه نشه مشکل قانونی داره نموش رفتی مثال بگه جعل تو رکوع جزن دستارا جزئیت قابل جعل نیست حتی اگه جلت و رکوع جزن دست این جعل تو رکوع جزن دستارا مفادش اینه که صلاح که مفادش تو شکر باشه مفادش اینه این که بگیم جزئیات قابل جل نیست شرطیت قابل جل نیست مراد ما مشکل لغوزی نیست ببین خب به نظر میگه بله من جزء قرار ندارم بعد ممکن است که وقتی دیگه من جزء قرار ندارم در نمازی که رکوع باشه یعنی در نماز رکوع اتمام این مراد جلبیونه این جور مطالب لا تحصیل ما مثلا قابل جهل و ظاهره نهیه اونی که اصلا نهی نیست نظر که این یکی از مراد واقعی انه این یعنی مراد واقعی عدم اعتماد عدم حجیت عدم صلاحیت مراد اینه نه که اینجا مثلا شما نهیه مولوی بگیریم، هالا آر خو نه از هم اینها ارشادیه و ارشاد به یک عمر فکری و واضح و روشن و سبب یک جامعها که رشد عقلانی پیدا بکنه اگر دنابش جامعه به همون که داره بمونه اسن امکان رشد نداره این لا تمال ل که بین <تصفيق> یکی از اصول و است، نیست یکی از مسائل سادهه باشه ننظر نلاه منن یکی از خصول است که این شریعت مقدسه که خاتمه شرایه هست یک نقطره علمیش هم همینه ممکنه در شرایع صابق مثل دو از دورو آم می ها توسطردبیون آم بینون را داده یکی از تعکیلاتفعلبر همینه که در این شریعت مقدسه بازی علم باشه زن نباشه. و در روایت دیده, دیده که معروف سنی در هر قلب می این که از سر بقایدی نمه همه خدا همه بخواهد در هر قلب کسی خواهد برکی که حتی تحریف همه قانی و انتحال محتلی کسایی که میخواد تذیر کنن جل بکنن ورد بکنن و افراز به اسطلاح ناساله بخواهد در دین اضافات بکنن خداوند متعال از خصاصی دین اینه که در هر برن اده رو بیفرست کار اینا این پالایشه کار اینا تصحیحه کار اینا تنبیهه کار اینا بررسی و دادن راه ثواب و صحیحه این مراد اینه نه اینکه از اینجا مولدی باشه امروی ارشادی خصوصا اگر در نظر بگیریم در ذهنیت ادهی از اصولین اهل سنت و قلیلی هشیعه هش حجیت خبر رو چون از باب همه زن میگرستن اما تقدیش این بود که ما در شریعت راقه از ندارد به زن اتفاق کنیم مثل معهوم محقق قومی از ما به ادهی زیادی از احل سنت نظام این استدلال با آیات ما این هم شما ما به خبر همه هم می زن می‌ره خدا که هم نظام دارد از این هم نفتیش ذهنیت استدلال با آیات برای مقابل کسانی که خبر واقع دورج روشان شده ذهنیت اصولی شون در برنامه‌ها اند سند تک این میکنن خبر واقع رو از واقع بود بکش ما که انتظار نمونیم اونا حرفش همین بود دیگه کسانی که انتظار نمیشن یا محقق نمیاروشین بخیر در مقابل ممکنه نه خب چی خدا خامونه نظر نه لایق نمی بینن حرفش ذهنیت شما میگین ما به زن مراجعه بودم خدا میگه نزنه الله مردن خدا میگه لا تقوی ماله ازده که بیه چطور شما به زن مراجعه میدن پس این مطلبی که ایشون بله مهم اینه که آیا عدلهی بر خوکییت قائم شده یا نه اگر عدلهی قائم شده باشه خب همون عدله خوکییت میدن یعنی اون دیگه زن نیست خوکیت یاد خبر و نیست شما خوشبانه ایم میدن اصلا این نی بد جوری تصویر آیاز میکرد اگر پشتوانه علمی کرد دیگه زن نیست ادراک ناقصی نیست ادراک تام میه ماله سلک بیه بی علم نیست در اینجا محوم و عرفی یعنی حضور و حقیقت حضورش رو حضور پشتبانه ها هست. و زیربناه های علمی یک زیربنای واضح و روشنی داشته باشه شما به دنبال این چیزه اصلا اینجور قرآن رو باید مجموعا نگاهش. این که اینجور آیات این در حقیقت دنبال همون رشد عقلی و علمی در جامعه است اصلا سبب شد اون هم واقعا هم این رو عرب جایلی چی بچی اینا این اونقدر چیمان بودن یه لبه حوض باشن این مخاطر همین آیاته و این آیات رو مثلا شما باید با زمن آیه به اصطلاح من که در جامعه اسلامی همیشه حد اکثری حساب شده نه حد اقلی یعنی تو جامعه اسلامی توی بحث لاضرر اشاره کردیم در ثوابت این بحثا بعض مثلا لاضرر رو در امور اجتماعی امجاری بشه اکثر مثلا جامعه رو با لازره درست درستوخريم جامعه حد اقلی نشه بود جامعه ما البته میشه که جامعه یه نقص پیدا بشه نقش بر این جامعه پیشرفت نمیکنه امکان پیشرفت نذاره با لازره نمیشه جامعه اداره, اداره یک جامعه با درست نیست از فرم برام داره بلا تهن سوس نشید. نشید و تهزن نگران آینده نباشید ناومید نشید و امتومال اعلان این جامعه امتومال اعلان چون که جامعه امتومال اعلان نظم داره نرحب شد. درست هست خبر رم شامل میشه تجربهات هستم توی آزمایش شما آزمایش کردید یه نتیجه گرفتیم میگن آن نمیشهن در قبل اینطورید که می بینیم و در چندبار این آزمایش تکرار ب کنیدین عوض جوض بکنید اینقدر تکرار بکنید تا تمام احتمالاتی که ممکن است به این نتیجه رسید منفی بهشفرت یک احتمال بمونه. این بحث ای ننظر لای اون حرف بشه یا چرا چون شما تا احتمالاتتون وجود داره به احتمال محدوده. شما نمی‌تونید به حق بررسید باید پشتبانه علمی شد پس در اینجه علمی آزمایش در اینجه علمی پس در این بحثه ای ما شنافت نصف کتاب کافیه با مثال ما هم اون زن و حق مختلفه مواردش مختلفه پس این مطلبی که قصد فرموزه که این رفت لاره چنخه این اطلاق داره اطلاق شامل بحث خبر میشه بله اینجا اکن فاسقون به نبعه این اصلا نباید. ولیزا ما اسرع آیاتی که در باب خبر داریم همونه چرا؟ چون تو خود آیه نبرده که شده خود خبر مثلا آیه یون ولیون دروگه نبیدیم یون دروگه چیه خبر یا آیات کتاب یا تفسیر مثلا اون سریع نیست دیگه برای آنزو تسال و اهل ذکر امکنتم لا تهلمون حالا اون اهل ذکر خبره به شما یا غیر خبر مثلا اشتها به خودشه دلوقتي. اون آیات دیگه خیلی سریحه در خبر نیست ولی دادت که بارن کردیم اصراح آیات در وحث وجود خبر حالا این نبرد نیست داشته هم چون این آیه که سریحا متعرضه خبر شده این آیات صریح... لفظ خبر کشیده داده مطلحه مخواد خبر باشه مخواد آزمایش باشه مخواد بسته مؤمن از اقعاق باشه بخواهد بست دنیایی باشه جامعه شناسی باشه روان شناسی باشه فرم نمیکنه این آیات مقاله که هیچ ناظره به مؤمن از اقعاق که ایشون نیست علیه که به ماکان این استدلال اولی ایشان که قابل قبول اینه این جواب اول و ثانیه انهو علا تقدیر تسلیم ان مفاده و الحکم المولده خیلی عزیب از اشان. نیست مفاظش حکم مولدی نیست و هو هرمت عمله به زن اصلا هرمت عمل به زن معنا نذاره معنای عدم و معنا دارن یعنی اگر بگه تو علای کل عمله به زن نیست این اصطلاح نباد تعلیمشون عجل دارد این مطلت از خدم دیمین البحث و عصودی دقت نمیشه این بحث و لحظه اما ما سعیم احکام وضعی قابل جعل نیستن. این نه مورات اینه که به لحظه این تون میگیم به لحظه این تون میگیم. از این جعل تو طهور شده. نتونستی قبولش کنی مشکل داری. جعل تو رو که ادیو داری. پس این که میگیم احکام وضعی قابل جعل نیستن، چون یعنی از نظر قانونی نه لحظی مشکل لحظی. روح فامیلی جویه حتی اگر نه حسی ای وجود نیست. این که جعل تو جزء انت، این امر سلطه‌ای مشترک برگوشه، شما مامور برگویی در امر سلطه، امور از اینه. این چیم کیم قابل جعلی، جزءیات قابل جعلیست. خورماتال امر دزد نیست قابل جعل، من از خورماتال امر دزد، معناشینی که این زن متقدم، من چه خورماتال امر دزد؟ مثل, مثل حرمت مثلاً خورماتی شوهر خبر می‌دارم، من از خورماتال امر دزد من ازش تویش نویس می‌دارم. کان از عدلت و حجیت الخبر حاکمتن علا کل آیات. در ایشون میفرموند اگه قبول بکنیم مولوی حالا ارشادی هم همینطور این عدلت حاکمه خب بله نست یعنی ایشون در حقیقت میخوام بگن ما به عدلت و حجیت خبر فهمیدیم خبر خارج براست اگه حجیت ثابت بشه راست از آیه خارج بشه ثابت نشه تحت آیه میمونه. البته آیا کوی میخواد نحوه تعامل بین دلیل حجیت خبر با آیات بیان بکنه نصفتشون چیه؟ آیا تخصیص تخصص مثلا حکومت چیه؟ ایشون مبناشون اینه که ما حجیت خبر و حجیت زن رو تعدده به هماره رو چی جور اصلا معنا بکنیم؟ مردم نایمی حجیت خبر رو و استاد و تا حدیب ملوم آزیازوار آزیان بایشون موافق باید رو سنیم کنه باید جیت خبر رو معنی تکمیل کشف می‌دونه این مبنا شده یعنی کاشف ناقص بود 70 درصد بود شارح کرده 90 درصد فقط کاشف به مجرد 90 اینا اینا عقیده‌شونه ای که خبر سیده خبر اعی ترتینوی کشف شارح اون رو به عنوان کاشف تام قرار می‌ده توضيح استاره رو اندازش اگر این رو کنیم نسبت این اجله با آیات میشه حکومت چون اون میگه زن یعنی ادراک ناقص و پیروی نکنید. این عدله میگه که خبر سقه زن نیست علم است هم بودن اون گفت لاتق و ماله یه علمان میگه علمون. پس اگر مخواد این عدله تطمیم کشت باشه نظران باردیش نتیجهش حکومت اما اگر مخواد عدله جهل حکم یا جعل معدار باشه مراد این باشه در اینجا نتیجهش تخصیصه چرا؟ چون شاره میگه لازن لازن لازن اینجا میگه شما زن نبوه بخوری دارید چون نمیگه اینجا یقینه این زن نبوه بخوری قابل اعتماده پس تخصیص میزن ایشون؟ اینجا تخصیص میزن خود این مطلب بعد و بعد اینجا نیست انصافت. محسوسا که ما سابقا از کردیم روی مقنه کسانی که مثل مرموهای خویی هستن که میگن حجیه خبر از باب سر اغلاست اصلا ما عرض کردیم این مطلب این لای لایومینه حق شیعن یک کلام نیست که اشاره با اغلا صحبت میکنه اگر در احتکار ذات اغلا خبر اغلا به قبوله اصلا خود به خود آیش حاملش نیشد به تخصص اشبه ما تخصیر آنید که رو بود دقیق اگر بگیم این نموحنه داره حقیقی های اگه امرو اغلالی موقع شاید ارتکاز و اغلالی ارتکاز و اغلالی هم هست که به خبرسته را به نظر آتونی خواهی نخواهی کلام رفید است و افتاده میشه اینجور میبهند اصلا این نظر نه... اصلا احتیاج نداره که برسیم خبرسته به تو همون چون اصلا ما با ارتکازات موصبت میکنه تفهیم و تفهم به حسب ارتکازاته اگر این افتکاز و اغلایی ثابت بشه که خدایی نظرشون اینه اصلا خیلی واضحه شبیه به تخصص شبیه تا به مسئله بکنم یعنی وقتی میگه زن اغلا خبر ثقر نمی اصلا خبر ثقر نمی که بگن آزو چرا خارج بشه چون اینم اغلایییست که زن مغنی از هم نیست اونم اغلایی دقت بکنیم راهی رو چما ثابقه رفتیم این بود اگر اینو اوغلایی باشه چون فاده مولوی مولوی که اصلا خیلی بعیده این اولاً منظور حافظ شما مش مولوی چه که تعبیر ادات مولوی درش به کار برده شده که دلیلش بعیده از ادات مولویات مقصدش که جمله اسمی رو تو مقام انشاء به وسیله زیدون قائم زید بلند بشه زیدون قائم این جمله چون جمله اسمیه چطور از این احتمال مولویات بدن هو علایه حاله توجیه که ما کردیم خود خود رو بهتر خودشان توجیه کردیم این اینه امر فکری و اقلائی است افتکاز و اقلائی است افتکاز و اقلائی در دندگیشونی هست که حبر استفاد بود جانده خواهی نخواهی شاملش نمیشون احتیاج به این راهی که ایشون رفتن نداری. لیکن مشکل کار اینه که و اما این مسئله که جعل معضا از چرا؟ شما بعد رو واسه شاعره تعجب که اینجوری میشه یعنی عضو اخرین حتی مثل ابن حزم میگه اصلا ذکر ان نظر انا ذکر و سغه عن سغه عن رسوله جزء ذکره میگه این اصلا ولی فيه و این ذکره ان انا انا ذکر نزیک ولا لا رو این بشه دیگه خیلی قوی تر میشه از اون یک معنای فون نمای دیگه یه حال سوال کاری نسبت تخصیص ورود تخصص مهم اون مهم نیست اون چیزی که پیش ما مهمه این است که انساب قضیه و جیت دلیلی بر حجیت تعبدی خبر نداریم نه از آیات و روایات در میاد و نه از سیره و, اغلا. و این آیات هم ارجاح میدن به یک امر فکری درست هستند ما هم طبق آیات مبارکه بلا استفاده از طریق علم مجردی که سرناحو دست بر نمی داریم دنبال تنظیه بیشتر مطلب می افتیم دنبال شواهد می افتیم تا برسیم به این که این قابل اعتماد هست در حکم ایلایی یا نه این راجعه به وجه سوم در کلمات و استاد بود وجه چهار دوم از؟ وجه سوم تا افیز از روایات که در شیعه آمده البته مضمونش چون رواستی می به پیغمبر هم نسبت داده شده چون رواست موامن هست به نظر هم درست نباشه نسبت پیغ اما به نسال به عینه ما داده شده خلاصش اینه که امام می شما به همه رواید همه نکنید براید که علیه شاهدان او شاهدان کتاب الله و اگر رواید مخالف با کتاب باشه با فران زخ رو خون یاریشون داره فلق به به دیوار بزنید حالا این به دیوار بزنیم و از این رواید نمکنید داره این جهر نباشه خودشون توی علیسانه افتاده و شاه مرموم و استاد به این مطلب تنسل کرده الوجه و ثانی از روایات و عن العمل به خبر المخالف کتاب سنه و سنه خبر اون شاهد و خبر ذریلا یکون علیه شاهدان من کتاب الله و مسننت نبی بعدا فرمان مهاده روایات کسیرتون متواترتون اجماله هم غیر زیاده و دلالت ها ازمین المعلوم انه اغلب روایات التي به ایدینا عليها علیه ها شاهد و من کتاب الله و من از سنت و الا لمه تجنائل تمسك که برخبر این به این طایفه از روایات ایشون جوابی که میدن و جواب ایشون میتونه روایات در دو طایفه از تصابر ایشان از طایفت ال اولا هیلا اخبار داده الا ان المخالف خبر المخالف باطل ونزخ وفر اقربول الجدار در حاشش محسن شیراوی بر جدار تزنه خیلی اولا نقل خبر مخالف ما ندشه علاقی ندارد خب ایشون می‌فرماید در مراد من مخالفه در این اخبار هی مخالفه به نحو لا يكون بین الخبر و کتاب جمع عرفی مراد اونجاییست که جمع مثل تخصیص و تغییر نباشه کما از خبر و مخالفن در کتاب به نحوه تبایون یا عموم منوج از عموم منوج بود به خبر و ها در نحوه من خبر اینکه مخالف با کتاب به تبایون خارجون عن محل کلام در نحوه غیره خجه بلا اشکال لا خلاف اگر تبایون باشه اما اون منوج شکس نمیتونه از این خوده که تبایون چرا اما اومن رشتون. و عمل اخبار مخالفت به کتاب و سنه به نحوه تخصیص یا تقیید فلیتت مشمولتن لهاده تایفه چرا؟ چون ما یقین داریم روحات زیادی به داریم که مخصص و مقیده کتاب است؟ بعدا هم, بعد هم که اولم بیادی کتاب الا اساس و احکام به نحوه اجمال که قولیه و عقیم و و آت دکات. و اما تفصیل و ریان موضوعاتها فهم و البته ما خیلی چون نمیخواییم اشکالات ملان و قطعی به اولو مروف بکنیم لیکن به طور کلی عرض میکنم با احترام با حفظ شعنه حضرت استاد رضوان الله تعالی ایشون میکنین لن بیاد کتاب الا اساس الاخکام به نهر اشما ببینید تنکو و از ایشونیشون خب بلا اشکال اصولی موضوعگاهیست بگه نمیشه اشکال. خود ایشان در اصول نوشتن دیگران که عدلهی که به اجمال باشه یا احمال اطلاق نداره اصلا شرط اطلاق نداره در مبان بگاه و اگر اطلاق نداشت تقیید مطلقات یعنی چیده حالا ایشون تنم به نحر تخصیص یا تقیید به اصلا اطلاقی نیست تقیید تقییدی بشه باشه طبق خودش خودشون احتمال داره به لحظشون خطا انجاری شده جایی که اجمال داره که ما اینام سالما توضیح دادیم بسیاری از آیات کتاب اصولا اطلاق ندارن خوب دقت بکن خودشون میگن اگر باید در مقام بیان یا در مقام اجمال یا در مقام اهمال مقام اهمال مواردشون اصل تشریعی خدا این که ایشون فرقیم و به نحوه اجماله این هم تازه روشن نیست به نحوه احماده نه به نحوه اجمال چون اصل تشریعه دقیق میکنه و اصل تشریع شد یه اطلاق مثلا که اگر اطلاق نداشت با هم یه ای که روایاتی که مقید اطلاقه اینا منافی نیستن یا سا که بحثی داره تجربه علم و ایندالله بله و نش که اول چه لیسن مراد به لزایشون میگه اما تفصیل و و بیان و موضوعات ها که منظور در اخبار این تفصیل در حقیقت بیان تشریع یعنی این تشریعا مثل تقریبا قانون اساسی خصوصیات نداره خصوصا در قانون میگه لذا توسف به اطلاوش میشید بعد در میگه که در از مخالفته به نحو تخطی و تحلیل تو این روایات نمیاد و همه ها آبی تخصیص و کیفه یمکنه انتظام به تخصیصیم مثل قول ایتالا ما خالق قولم خلاصه بعد ایشان یکی اشکالی این اشکال در کلمات قبلا هست ایشان خلاصه مطالبی که از زمان شیخ بوده تا زمان خودشون که هم وجور کردن بعد و دعوا این اشکال دعوا همه هایت های اگر مراد تبایون باشه یا ام این همه روایات و تأکید ما نگفتیم زخ و فنباس خب معلوم اونای که جهار بودن و از ظاولن نمیمون در که به نهر تبایون با قرآن هست جهر بکنه این در غیر و مسئول هستن بعد جواب میدن اینا رو نقل که نمی کردن حتی لایقبل من همون خبر و کتاب تبایون بر بل بلکانو یه دستون ترک مجعولا مجعولا کتب عبی علیه ال، لعن المغیره دسته کتب احادیث من که نفرمیدم اگر اول در فرنمیدم مراد ایشون ایشون اینا از ائمه نقل نمیکردن در میار کتب اصحاب رو جامع داده دست می‌گیره تذویر در... در کتب اصحاب از ائمه لا میتونه بعد اینشون داره لعن المغیره لعنه او دست فی کتب... کتب اصحاب عبی خب دست فی کتب اصحاب عبی حتی بای اصحاب عبی که نیست دست فی کتب اصحاب عبی یعنی امام باقی سامدال یه روایات از امام باقی کمانیشون نبود من نکنیشون چی فهمدن همینست نفهم چی می فهمدن مرادیشون چیه اگر آمون بعد فهمیدن به من تذکر بودن علایان این راجع به طایفه اولا که خلاصش اینه که اخباری که داریم بعضش به عنوان مخالف خالفه رنبناست که این مراد مخالفت به نحو تبایونه یا مخالفت به نهو اومنوست و اینا هم موجب نیستن اومنوست که برید خودشون هم بریداری صرف هم و اما از و ثانیه هی الاخبارو داله علال امن اعنال امن بالخبرالذیلای خونه علیه شاهده پس یک طائفه عنوان مخالف کتابه یک طائفه لیسه علیه شاهدون او شاهدان من کتاب الله بعد هم با حاضر به و امکان از وافیت دلالت علال مدعا. درسته این نشون که خبر استقه به نفسه حجت نیست اِلَّا اَنَّهُ لَا يُنْكَرُ اَخْذُ بِزَاهِرَهَا لِلِعِلْمِ سُدُورُ الْأَخْبَارُ لَتِي لَا شَاهِدَلَهَا مِنَ الْكِتَابُ بَسْنِ خوب تأکید از این اونجایی که علم داریم از این قاعده دست برن که اینم داریم به قاعده دست شد خلاصه من هم لحاظ تایفه علا صورت تارض این یک نقطه ای است که ایشون در اینجا به یک نتیجه گیری بعض بعضی به زنده این نتیجه خلاصش اینه خلاصه مطلب الزمند همین ما دو تایفه روایت داریم خود در کنیم. یک تایفه همین روایت شاهده از کتاب و سنه قبول نه توش تعارض مثلا نیست. همینطوره. یک تایپ در فرض تعارض میگه میگه دو خبر متعارضن میگه اونی که لیس علیه شاهدان و شاهدهان این کتاب لا اینا نبودن. مشخص شد دو تایپ این شاهد و شاهدان این کتاب الله تو بعد از روایات آمده مطلعن فرض تعارض نیست تو بعضی آمده با فرض تعارض. در کفایه میگه این جز مرجیهات نیست. کفایی اینطوری اختیار میگه من که خبری که به ایسه علیه و شاهدان صلی اللہ پی نفسه حجت نیست حالا به تحبیر بنده این جزوه مخدمات حجیت نه جزوه مرجحات اهدل حجت دنهر الاخراز کفایی اینجوری فهمیده میگه اون روایتی که در موضوع تا آرزه ارجاع شده این برموضوعی در موضوع نیست پس بنابراین اگر در تعارض امام میفرموند لیسه علیه شهاده شهاده من کتاب الله قبول نکن چون حجر نیست بحث مرجقیت مفرح نیست آقای خویی اکس ایشان هم. ما اون گفتیم که این توعرف الاشوی ها به ازدابه ها آقای اون روایاتی که فرض تعارض نکرده اونم ارجاع بدیم به تاروز <تصفح> دو تا قول شد متضاد دردیه دو طایفه روایت بود این که با شاید کتاب نباشه یک طایف درجه این که فرض تا یک طایف اصلا فرض حجیت کار به تا نداره میگه اصلا این فیلمسه نیست در که پاییه میگه تا آرز برگذیم با که تا نیست آنهای خوید پر اونجه که تا نیست بگه اونجه ای تا آرز هست و ایشان مالی سعلیه شاهد و مشاهدان به کتاب الله مقومات و حجیت نمیدونن مرجح میدونن تر بودن خیلی روشن شد پس یک بحث این است که در مثل کفایه میگه این کلیس علیه شاهد علیه و مکتاب الله این در مقومات و حجیت هست. مرموم های این فرش روز مرجحاته لذا ایشون میگه که بلیه بله بله بله فلابد من حمل حاضر طائفه اینا ها با اینکه در ظاهر نداره تآرز ایشو میگه لابده خیلی تعجب‌آوره حالا ما همیشه از کردیم اگر یه سواریتی داشتید که ظاهر در یک معنا بود و اون معنا را قبول نکردیم چه دلی داری داریم لابد من حمل به تآرز میگیم ما معنای رواتون نمیفهمید دراد به ائمه الان لابد من حملشو تو بحث این بحثی این کردم از قدیم بود شیخ طوسی حالا ما هر جهاز ما بگیم آگه یکیش این طوری اونطوره اون طوره این هم یکیش مطابقه با فتوای اصحاب فیشیست ما آنها نمیتونیم قبول بکنیم پیفن. این رعای خوبی دارن اصحاب ما هم دارن اصحاب ما, ما با اینه اگر روایت موردش در هجیت خود دقیق بکنیم موردش در جهاز که تاروز نیست میگه نمیشه ما روایتی داریم که ليس عن انشاء ما حالا خوب بگیم یورا در این تاریخ علنی ما کار که خیلی راحت کنه این تفکر فقط کوروش فیکوو چون این خیلی مهمه یه راه هم الان تو روزای ما هست یا نه ولی تو رو در تهاجمی لابد من حمله حالت تهاجمی حالا اون حمله در کفای کم نسبت بهتر بود چون میگه روایتی بگیر حجت میگه در تهاجمی میگه این روایتی من گفتم خب بگیم چون حجت میگه تهاجمی با نظرم هم به اون آی خوبی آقای خویی به اینس تلابود هم لها به تارفه علا صورت تعارض کماه و سریح و بعضا درست درسته در تاروزه ربان یاد که در تعارض در موافره کتاب آمده اون اصلا احتیاج بشه داره که داره که انشاءالات آزیانه بین سو جا بردیم باب تاروزه داره. اونجا توضیحاتش عرض میکنیم کنیم معظمش سند ندار نمی و سند ولذا ذکرنافی بحث تا و ترجیب و اند موافقت امومات کتاب و اطلاقاتی من المرجحات به عکس اون آقا قرار شد نه المقدمات خود جیه یا لابد من این او علا حمل الاخبار المنصوبت لهم فی اصول دین مراد اینه یا ما یا تعلق به یا، ممالا یوافق و, و مذهب الامامیه اصلافا این ربایاتی ده که نقل شده بیشترش تو احکامه ارز کردم قائل به این قول یونسیبن عبدالرحمن و ادهی از مقدادی های ما اینا حمله بر اصول دینی یا تکمیزه. مثلا رو مثلا تکمیز خیلی عجیب ازشان شوال مثلا یک راهی خوب آدم بگه آن یارد و علمه ها اله ها ما میبینیم روایت روی داریم که قبول داریم بدون که شاهدی از کتاب الله ها باشه از سانت نبیه قبول داریم پس این روایت یارد و علمه این که راحت تر بود تو این مطلب بله بله و قلبه بیه حاضن نومن الاخبار انهم کسی را اله اهله اله به حیث این کتب المعتمده المعتبره هندنه که کتب الهربعه من از ها این چهارت کتاب شوقت دارن به الله کتاب دقیقش کافی و بعدشن فقیق اون دو دوست کتاب خودش را اد میکنه و باید فرد میکنه محکونها محذبتن منها زن نومون الاخبار دو تا شرا فقیق و کافی دوست دیش نه قدیو جدفیه ها منها قلیل ها مثلا آنکه داره هم تر که میخوانم دقیقه کتاب غیر, غیر مشهوره خیلی و منها زن قلیل ما فقیق کافی عبدال علا ان لو علم الناس کیفیت شر بهم لما لام احد اهدا که گردش بوی جعد میاد مثلا دیگه ایشون توی جلد دوم ظاهرن توی جلد دوم محاضراتشون خیلی مفصل راجع به جعد صحبت کردن چون این تعبیر این که مالام لمال مثلا شبیه همون انناس محاضره که معادر نظر شده است که در کفایه به عنوان جعد آمده است و بله خودش هم قلم اینجا رسید و سر بشه کس رحمه همون الله جمعیه حالا یه حاله من از مشایخ شدیم من ما بجردی از مشایخشون نمی فرموندن که در همین همینجام در بحث خودش کفایه در نجم خیلی از علایه قلم اینجا چون شعر اینه چون, چون که قلم از بیش از حد خود به نگاش قلم اینجا رسید و سر بشه چی چیز مثل افراد شاید داشت داره که مرحوم ها بجرد که غیر از حال این قلم اینجا رسید این بحث که رسید رو می دارم که ما آده نظر و بعد خون در پس پرده توتی صفت هم دارد در پس آینه توتی صفت هم داشتن هرچه استاده از گفت بگو می کن اینشون هم یه ادهی از پای درک برن شدم برن که اینشون مثلا جرب شد حالا یه حالا چه این و مخالفتون. لنست لأن الله لنالله تعالی ای حالا این مطالبشون دیگه احتیاط به یک آلم دیگه داره فعلا این سه چار ست رو هاون بعد مراضیه کن حاضا مضافن. حالا بعد یه راه دیگه ایشان رفتن نسبت به این اخبار معارضتون به مادل لعلا حجیت خبر سقه این مدل مرادشی یعنی شواهد به الله روایات که پی... نداریم خود رو روایات قبل نکنی که خبر سقه حجیت چون مدل به نظر ایشون سیره و اغلا در سیره اوغلا این نسبتش رو با تعبد شرقی یکی دیگه باید حساب کرد ایشون و نسبت و بینه همه هیل عموم المطلب نسبت بین این روایات وقت تمام شده چون دیگه حیفه دیگه حالا فردا البته این آقایی که کتاب رو چاپ کردن در زمانی مال مال محموم خدا مقرر سیر رحمت الله علیه سیر بیت سوره توبه رو تعلیم داریم آیه سلواعد مال ایشانه یا مال این مؤسسه که داره چاپ میکنه ایشون اش واقعا عموم منبع که شامل باشه آقای خوبی عموم مطلق گرفتن لان مفاد حادثه طائفه عدم حجیت خبر الذی لا شارح دلمون من کتاب و السنه سو آنکان مخبر سقطن اولاد و دلیل حجیت خبر اثر اخر فیقید به اطلاقات ها و تکونون نسیجه بعد الجن اندام حجیت الاخبار لا شارد اله هم در کتاب و سنه الا خبر از سره ایشون نسبتشون اون خوصو منوش مطلق گرفتن البته خب همینطور که در هاشیه آمده ظاهرش که من خوصو منوشه نه مطلق که این ترجم از ایشان واضحه چون اون خبر مگر اینکه که ایشون بید قرینه دیگه اگر ما باشیم این عنوان هر خبری که شاهدی نداشته باشه خودجه نیست موقع مخبری سقه باشیم من... یعنی به عبارت اون ما کاری هم به نسبت ندادیم بحث معیار این ربایت میگه معیار شاهدان و شاهدان کتاب الله نبود خودجه نیست حالا این که خودجه نیست سوال مخبر سقه باشه نمیست. اون ادله به تعبیر استاد موضوعش خی... سید اوغلن است ادله نه اون ادله به تعبیری شد یه خلاصه به حجته میخواد شاهدی از کتاب باشه نباشه این دستورش به اوج نموج میشه دیگه تعجب اینه که حاشیه نوشته اون حاشیه خیلی روشن حالا توضیحی خیلی روشن به نظر ما این احتیاج به ترجمه بله مگر یک نکته ای رو از خارج زمین بده این نقطه خارجی رو بهش اضافه بکنه و الله ما باشیم و زواهر این استدلال، این طوریه اون میگه مئیار در حجیت وجود شاهد و شاهدان من کتاب الله ببینید به قسم مئیار این میگه مئیار در حجیت وصامت راوید خب دو تا مئیار هم دیگه این دیگه نمیخواد من ایسا نمیخواد دنبال اون بهتون مطلب از یه حرفا ببین اون یک مئیار میزه، این یک مئیار ب خائنخواهی در بعض از موارد می معیار نذار بعضی خیلی واضحه مثلا تعجب است من هم استاد خصوص مطلق گرفتم خیلی تعجب آور است ایشان مگر اینکه با از چاکونه باشه و الا اگر ما باشیم قاعدهش اینطوره کار به نسبت و نسبت هر نسبه 40 هم نداریم این میگه معیار وجود بنده مگر اینکه شما اینطور بگیم اون که میگه معیار شاهد و شاهد در کتاب با فرض اصلا عوض باید بشه اصلا فردش اینه یعنی اضافه برمساقت راوی ولی اگه این شد به عکس کلامه استاده. اون خصو مطلق اون بره یا یک از این برش بگیریم اون بحث دیگه اگر ما باشیم و چون سابقا ارز کردیم اگه باشه گفتیم مثلا در تعریف بین علماء سنیم اهل سنت چرا تو روایت آنها نهازده می اصلا خبر شاز اون خبری که سردش صحیح باشه شرط میکنن اگر سردش صحیح نباشه اون کاری میشه رو زود ندارن اون اگر ما اینجور بگیم مفاد این دقیقی کن اون روایاتی اینکه شاهد یعنی با فرز وساقت راوی با فرز وساقت راوی مطابق با کتاب باز باشه اگر این باشه که اصلا مسائل اخلس مطلق و 절대 وجه مونیکا رو اصلا نداشته او در نداریم اگر ما ظاهرش رو بگیریم حالا ظاهر اولا ما اصلا تو من که اصلا تو این بحث وارد نمیشم تو معادله اخلا به خاطر قبول نگرفت بحث رحمیه و ما اخلاق هم تو بحث رحمی وارد میشه که نسبت چیه ما که اصلا تایپ دوم نداریم هیچ این دفعه پیدا که بگه خبر شده لکن به صورت حمییی میخوام اینطور ارزو کنم. بکنم این مگه چون دیگه عبارتی رو دیگه معنا بکنیم و الا ما باشیم و ظاهر اینطوره اون میگه ما به صفات راوی خوب دقت میگه به صفات راوی نگاه میکنیم و حجیت تعبدی تابع صفاته این میگه به مضمون خبر نگاه میکنیم و حجیت تعبدی تابع مضمون خوب دقت اگر این دو تا اینجوری معنا بکنیم خب قطعاً به جوری تعارض اصلا موارد این حجت اونگه حجت نیست مثل بحث رجلی فهرستی که ما میگفتیم تفرق بعضی بحث رجلی حدی حجت بود تفرق بحث فهرستی معنی حجت نبود پس این دقت بکنید مثلی که استاد در اینجا آورد و بعدم موحی حاشیه داده اصل حاشیه موحی اجمالا خوب والا خیلی نست مثل درست مثل درسته توضیح داده آخرش هم یه چیزی گفته که اون هم درست نیست دیگه میگه بحث شما رو بگین ببینید هر دو خیلی خروج از موقعه خلاص این مطلب این مطلب رو از باید اجمالا قبول کرد که ما طایفه از روایات داریم که معیار و رو موافقت با کتاب و وجود شواهد کتاب می دونه که ما هم در تخصیم بندیامون صادران گفتیم این موافقت با کتاب شواهد با کتاب یا در خود خبر ما که ظاهرن یونس در رحمان این طوری بایی بوده یا در مضمون موثر شاید ایدی از ها مثلا مضمون رو دلت لابن قرائ شامل اون بشه دنبال مضمون باشه این دوباره باید اول بخونیم بعد اون روایات بررسی بکنیم، ببینیم آیا چنین چیزی در روایات اهل بیت البته در ما به رسول الله هم نسبت داده شده آیا اگه بخوام نگاه کنم اولا اگر حال دارم با این کامپیوتر بگردمین در کتب اهل سنت این مطلب از رسول نقل شده یا نشده؟ که پیغمبر فرمود باشه ای امناس اون چی که از من نقل شده اگر موافق علی کتاب حجت موافق نیست من نگفتم باطله. اول این مطلب در الله